ستا جلدی میارم. مستجر طبقه پایین خانه چوبی کهنه و دو طبقه شماره نوزده بیشتر اساس خاش را فروخت. در این محلات قدیمی کار مخفی نمی شود کرد. همه با خبر می شود. همه اهل محل برای خریدن جنس ارزان قیمت فوری ریختن به خانهش. دیگ و دیگچه ها، کاسه و بشقاب ها، کاناپه های قدیمی فنر در رفته، سندلی ها، میز ها، کمد ها، میز توالت پای شکسته، همه و همه، ارزان یا گران فروخته شد. روز بعدش هم، صبح اول وقت، یک واند آمد دمه در. خنز پنزر های باقی مانده را هم داشتن باره وانت می کردند. در خانه شماره 64 که روبروی خانه شماره 19 قرار دارد، طالب بیک می نشیند طالب بیک صبح وقتی میخواست سر کارش برود وانت را دید. شب قبل زن طالب بیک به او گفته بود که مرشد بیک روز قبل اساس خانش را فروخته. چیزی که باعث تعجب بود این بود که موقع فروش اساس خانه زن مرشد بیک و دخترهایش اصلا ناراحت به نظر نمی همگی همه گی می خندیدند. طالب بیک به زنش گفت خب کشی کنن. نمیتونن که گریه کنن خدا میدونه چقدر ناراحت شدن اما واسه اینکه که جلو دوست و دشمن قایم کنن طوری وانمود کردن انگار دارن میخندن زنش گفت شاید یعنی حادثه بدی برای مرشد بیک اتفاق افتاده بود کسی چه میداند؟ شاید در جای دیگری معمور به خدمت شده اما زنش میگوید داریم میریم نشانتشی. اونجا یه واحد بزرگ اجاره کردیم. میخوایم وسایل خونمون رو هم کلن نو کنیم. طالب بیک به زنش گفت بشنو نو باور نکن. حتما یه بلایی سر مرشد بیک بی اومده. مگه کار من جماعت میتونه تو نیشان آپارتمان بگیره تازه کل با اساس خونش هم عوض کنه. ما تو اجاره این خونه موندیم. حقوق پایه مرشد بیک هم مثل من پنجاه لیره است. طالب بیک و زنش شب در رخت خوابشان پیش از خواب این حرف را رو رد و بدل کرده بودند. صبح روز بعدش هم که موقعی رفتن سر کار آخرین اسباب را دید که بار وانت کردند، ناراحت بود، ناراحت شد. پیش مرشد بیک رفت که داشت وسایل را پشت وانت جا به جا می کرد. سلام کرد و گفت. هم دارین از محلمون اساس کشی می مرشد بیک؟ بله، داریم اصاس کشی می کنیم. نکن حک می دادن بریم معموریت شهرستان نه بابا تو نیشانتاشی آپارتمان تکواهدی گرفتم شمام تشیف بیارین مطمئنا خونه جدیدمونو خیلی میپسندین پنج تا خواب داره با یه سالن بزرگ بزرگ، دل آفتابگیره طالب گیرهطال بیک که خیلی ناراحت بود دست راستش را با محبت روی شانه همسایهاش گذاشت بعد خم شد و آهسته در گوشش گفت مرشد بیک. من خاطرتو خیلی میخوام چندین سال همسایه ایم میدونم قایم میکنی تا حرف در نیاد حق داری اما منو با بقیه یکی ندون نکنو بهت ظلم شده اگه اتفاقی واسط پیش اومده منظورم اتفاق ناگواره به کاری از دست اون بر بیاد و بتونیم کمکت کنیم هممون کارمندیم از درده هم دیگه خبر داریم ماشد بیک میخندید گفت هی <تصفيق> بابا من دیگه کار نیستم استعفا دادم نه آخ آخ چیزی هم به بازنشستگی نمونده بود راستش خیلی ناراحت شدم خب الان میخوای چیکار کنی بیکار که نیستم سه چهار ماه که دارم کار میکنم خیلی خب چه کاری هست تو قهوه خونه میشینم فهمیدم خب چه کاری میکنی کارم همینه دیگه از صبح تا شب تو قهوه خونه میشینم خب کارت چیه؟ ای بابا تو قهوه خونه ها میشینم دیگه همینجوری علکی که نه کارم ایجاب میکنه آه پس بگو مدیر قهوه خونه شدی نه بابا مدیر چیه هر جا قهوه خونه ببینم میرم توش میشینم طالب بیک با خودش گفت مرد بیچار پاک زده به سرش دیوونه شده مشهد بیگ لحاف و تشک ها رو پشت وانه جابجا کرد و گفت تو که غریبه نیستی واسه تعریف می کنم من الان کار تجاری می میکنم تو این زمونه کار تجارت تو قهوه خونه ها انجام میشه تجارت خونه و بونگاه و اینا رو ولش کن اونا دیگه از ما افتادن اگه دفتر داشته باشی باید مالیات بدی جلو هزار کس و ناکس جوابگو باشی الان دیگه تجارت اصلی تو قهوه خونه هاست خدا رو شکر حقوق یه ماه کارمندی رو الان یه روزه درمیارم. روزی دست کم سی ست لیره کاسبی میکنم دیگه واسه چی تو این خونه بشینم تو نیشانتاشی یا آپارتمان بزرگ گرفتم میخوام از باب وسایل خونم رو هم نو کنم آخیش <تصفيق> طالب بیک پرسید چه تجارتی میکنی؟ هرچی باشه از نخ و سوزن بگیر تا ماشین رو کشتی طالب بیک که از تعجب چشمانش گرد شده بود گفت. میخری میفروشی؟ نه بابا نه میخریم نه میفروشیم خریدار و فروشنده در کار نیست. جنس نیست که بخوای بخری یا بفروشی. فقط ما این وسط کاسبی میکنیم امین. طالب بیک با خودش گفت <تصفيق> یه بلای سر این بیچاره اومده انگار عقرشو از دست داده. مرشد بیک گفت بیا وسط تعریف کنم که این کارو چه جوری شروع کردم. یه روزی سوزن چرخخیاطی خانوم میشکنه. هر چی گشته بوده هیچ جا سوزن خیاطی پیدا نکرده بوده خودت میدونی که خانوم واسه در رو همسایه خیاطی میکرد و چهار پنج قروش در می آورد میگم چهار پنج قروش یعنی تقریبا قد حقوق او موقعی من درآمد داشت خلاصه گیر داد به من که باید واسم سوزن چرخ خیاطی پیدا کنی همه جا رو گشتم اما پیدا نمیشد که نمیشد. بعدش یه نفر خدا عوضش بده بهم گفت برو فلان جا فلان قهوه خونه. فروشنده لوازم چرخ تو اون قهوه خونه میشینن رفتم به قهوه خونه ای که گفته بود سلام علیکم علیکم السلام یه عاقل مرد اومد پیشم گفت دنبال چیزی میگردین گفتم بله سوزن چرخ خیاطی میخوام چند دوجی میخواین اون <تصفح> کم مونده بود از خوشحالی همونجا بیافتم و قشق کنم چند ماه بود میگشتم و یه دونه هم پیدا نمیکردم اون وقت میپرسید چند دوجی میخواین خب سوزن چرخیتی همیشه لازم میشه. برای همین با خودم گفتم حالا که پیدا کردم یه دوجین بخرم تا بعد دوباره دنبالش نگردم. گفتم یه دو جین. ترش کرد. گفت تا لیره بدین. چی میگی سوزن دونه شست قروشه. یه دوجینش میکنه به عبارتی هفت لیره و بیست قروش. خب برین از همونجا که قیمت گرفتین بخرین. رفت سر جاش نشست. هشتاد لیره باید بدیم. به خاطر یه سوزن بی ارزش ماهی سیسر لیره در آمد و از دست میدیم. پشت سرش رفتم. گفتم ببخشید آقا، معذرت میخوام، متوجه نشدم. بفرمایید، اینم هشتاد لیره. پولو گرفت و توی جیبش گذاشت. گفت شما اینجا بشینین و منتظر باشین. خب بازار سیاه دیگه. پولیس ها و مأمورا زاغسیامونو چوب میزنن. رفت. من نشستم و منتظر موندم. عصر شب شد میخواستم قهوه خونه رو تعطیل کنم نه کسی میومد نه کسی میرفت هشتاد لیره بدجوری سوزوندم یه هفته کارم شده بود هر روز میرفتم اون قهوه خونه خبری از آقاه نبود با خودم گفتم لابد مرد بیچاره رو به خاطر من گرفتن سر تو درد نیارم. خلاصش سوزن دست ما رو نگرفت بعدش یه دفعه خانوم روماتیسم گرفت زن بیچاره از درد داشت میمر بردمش دکتر دکتر نسخه نفشت، اما دواش هیچ جا پیدا نمیشد استانبال به این بزرگی رو زیر پا گذاشتم اما بی فایده. بعدش خدا از بزرگی کمش نکنه یه آدم خیر پیدا شد و بهم گفت فلان جا تو فلان قهوخونه هر دارویی که بخوای پیدا میشه رفتم به ای که گفته بود هنوز پامو تو قهوخونه نذاشته بودم که یکی جلب سبز شد دنبال چیزی میگردین نسخه نشونش دادم و گفتم بله این دارو رو میخوام چند تا جابه دو دونه باشه کارمون راه میفته سیصد لیره بدین اگه ندم چی کار بکنم زنم از درد رو به قبله افتاده آقا فلوو گرفت و توی جیبش گذاشت گفت شما اینجا منتظر بمونین جلی میارم هرچین نشستم نیومد رفت که رفت از قوه خونه چی پرسیدم گفت ما از کجا بدونیم آقا اونم مثل شما مشتری گذریه خلاصه درد سرت ندم. بعد از یه مدتی شیشه یکی از پنجرهای خونه شیکه که کم مونده بود از سرما تلف بشیم هر جا می رفتم شیشه پیدا نمی کردم نبود که نبود دوباره یه آدم خیری بهم گفت فلان جا تو فلان قهوه خونه می شیشه پیدا کنی. طالب بیک گفت ای وای مگه تو عقل تو کلت نیست؟ این چندومیش میشه ای بابا این که مسئله عقل نیست مسئله احتیاجه یارو می دونم میگیره یا رو میره. می اما اگه نره و چیزی رو که میخوایم ور بیاره اون وقت چی؟ خلاص کورسوی امیده. چاره دیگه هم مگه هست؟ افتادی توی دریا داری غرق میشی باید به هر علفی دست بندازی. خب تو هم پشت سرشون برو. اجازه نمیدن این کار بازار سیاهه. یارو چهجوری جوری بده فینان کنه؟ اگه پلیس مخفی باشی، اگه مأمور باشی چی؟ خب وقتی جنس جنسو آورد پولو بهش بده. خودش که جنس نداره. اونم باعث بلاست کس دیگه از یه جای مخفی بخره. آخر آخرش دفون زلیره گیرش بیاد یا نیاد یا رو به خاطر دفون زلیره خودشو میندازه به خطر چون ممکنه گیر بیفته و بره یه مدتی آبخونک بخوره زندگی سخته داداش خلاصش پولیم که بابت شیشه پنجره داده بودم رفت یه روز رادیومون خراب شد نمیدونم کدوم لامپش سوخته بود توی بازار لامپ پیدا نمیشد این دفعه بدون اینکه از کسی بپرسم سر خود رفتم توی قهوه خونه یکی پیشم اومد قبل از اینکه اون ازم به پرس من ازش پرسیدم چیزی لازم دارین گفتستم به هروئین لازم دارم داری پرسیدم چند کیلو میخوای مرد تعجب کرد دستم ماچ میکرد گفت ده گرم بسته گفتم دو هزار لیره بده پولو داد بهش گفتم تو همینجا بشین وسط میارم از قهوه خونه زدم بیرون دیگه علم تجارت رو یاد گرفته بودم طالب بیک. هر روز نزدیک ظهر از خونه میام بیرون و میرم به یه قهوه خونه. نصف 15 دقیقه که میگذره، یکی میاد و میگه دنبال قهوه میگردم. چند صد کیلو میخوای؟ یک کیلو کافیه. صد میره. <تصفح> روز بعدش به یه قهوه خونه دیگه میرم. یکی میخ میخواد، یکی رنگ. دیروز یکی ازم دو حلقه لاستیک خواست. ازش دو 2800 لیره خواستم. طالب بیک پرسید: خب اگه کسایی که پول دادن یه جای ببیننت، چیکار میکنی؟ خب ببینه. چند روز پیش آقایی رو دیدم که ازم پول گرفته بود تا سوزن چرخ بیاره بیاره. خش رو گرفتم گفتم سوزن وکو گفت دارم می گردم آقا مگه تو این دور زمانه سوزن چر به این ناسونه گیر میاد. شیش ماه دارم سگدو دو میزنم تا واسه شما سوزن پیدا کنم. خوب میدادیش دست پلیس؟ نه این کار حساب و کتاب داره اصلا خطرناک نیست. چه میتونی بدیش دست پلیس؟ چی میخوای به پلیس بگی؟ نمیتونی بگی که میخواستم از بازار جنس بخرم. خریدن هم جرم فروختن هم وسایل را باره واند کرده بودند. زنش مرشد بیک را صدا کرد رو کرد به طرف زنش و فریاد زنان گفت دارم میام بعد به طالب بیک گفت تجارت کار بامزده یه داداش. اونی که پول میده میدونه جنس دستش رو نمیگیره اونی که پول میگیره هم میدونه که جنس تحویل طرف نمیده اما یه چیزی این وسط هست امید طرف میگه شاید از یه جایی پیدا کنه و بیاره طالب بیک گفت راستی ما گیر لازم داریم سقف خونه داره چیکه میکنه میتونی گیر بیاری؟ مرشد بیک پرسید چند تون لازم داریم؟ تون چیه؟ دو تا پیت علبی غیر باشه کارمون را و 150 لیره زیاد نیست؟ منم باست از کسی دیگه بگیرم این وسط فوق فوقش دولیره واسه خودم میمونه طالب بیک؟ صد 150 لیره را دار مرشد بیک به او گفت تو اگه میخوایی اینجا منتظر بمون اگه میخوایی تو خونت من وسایل تو وانه تو ببرم خونه جدید بعدش رو واسط میارم فعلا خدا حافظ خدا حافظ مرشد بیک.